بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وأهله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ثانيا الحسن وفي تحرير معناه اضطراب فقال الخطابي رحمه الله وهو ما عرفه المخرج واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء بحث حديث حسنا ذو من قسم احاديث كيش استبلال مشه مشه مورد قبول علما بحث حدیث حسن در تعریف حدا حدیث حسن اختلافات شدیده و لما اختلاف اختلافات زیادی دارند البته هم اینه که در زمان دهون اول و قرن اول و دو دوم از خود حدیث حسن به من صحیح یاد میکردند یعنی وقتی که میگفتن فلان حدیث صحیح اون صحیح حسن رو در بر میگرفت خود به خود چون در تاریخ علماء مقام قهد اومد که مثلا خیلی از علماء یک حدیثی را که طرق داره صحیح میداره مثل ما مشافه یه حدیث مرسل حدیث زعیدون و که مرسل جز ملاصیل تابعین اکتباره امام شافه قبولش داره هرچند که شرط شروط حدیث صحیح را نداره لیکن میگه که من چون دیدم مطابعات داره چون دیدم به طور امر امرویز شده در نتیجه مورد قبوله. صحیح از نهاز عمل نه از نهاز شرط محدثی. خب پس لمس میشه. لمس میشه. در کلام متقدمی که نوع حدیث حسنی وجود داشته. لیکن نه با شرط و شروط و ضوابطی که علمای متاخرین گذاشتن. امام خطابی برای خودش یک تعریفی داره. امام ترمزی خواهد اومد بازن برای خودش یک تعریفی داره. هر کدام برای خودشون تعریفی دارن. بعض سلام ها گفتن مثل ابن سلاح میگه ام جز اولین کسانی که لفظ حسن رو به کار بردن امام ترمزی. آیا این حرف درسته؟ نه. قبل از امام ترمزی امام بخاری هم کار برده. قبل از امام بخاری امام علی ابن المدینی هم بکار برده. پس آلما هم بودن که لفظ حدیث حسن به کار بردن لیکن اون ذوابت اون شرط و شروطی که دقیق باشه براش نگذاشتن هر کدوم از اینا برای خودش یک تعریفی گذاشتن و یک ذوابتی گذاشتن امام ترمیزی میبینیم که لفظ حدیث حسن به طور مفردیه یک به یک معنی میاره حدیث حسن صحیح به یک معنی میاره به حدیث حسن غریب هم به یک معنی دیگر میاده میاد خواهد اومد همه این الفاظ باهم داشت به طور تحلیلی یعنی گفته های امام ترمذی این حدیث حسن غریب این حدیث حدیث صحیح یعنی چی چه معانی داره مولانا چطور فرمدن همه این مباحث مهمه که مورد بحث بدیم خب اولین تعریفی که ما باید داشته باشیم تعریفهم خطابی چون قدیم تر از همه هست ва ба хасби хадис хадис хасаба чони фаред меконад мегэ ки хуа маръури самахроҷо махроҷш асосш мушаххас бошэ пас куда дар бораи хадис баъд танаби аби сана махроҷш мушаххас бошэ баси аб махроҷш мушаххас шуд رجалش راویانش مشخص باشند حسین و علیه مدار اکثر حدیث و علیه مدار اکثر حدیث كل حدیث ان چه شرط شروط داشته باشه اون راویانش مشخص باشه مشهور باشه با هو الذي يقبله اکثر العلماء و ان حدیث جزء حدیثی باشه که وول بیشتر اینولما اونو قبول دارن و یه تععملور عام ف ها و ها به اون سلان می کنن یا ازایش استفاده میکنن در رسبات احگاها اعتراضتی که به تعریف میشه اولا مقررجش مشخص باشه حدیث ضعیف مخرش مشخص نیست اساتش مشخصی بله مشخصی حتی حدیث موضوع هم مشخصه. نه اینکه که فقط ضعیف. موضوع هم حساسش معاینه و مشخصه. پس این ظابطه در تعریف حدیثه حسن نیست. فرقی را بین حسن و غیر حسن نمیده. راویانش مشهور باشد. آیا راویان حدیث ضعیف مشهور نیست؟ راویان حدیث ضعیف هم مشهور. عالیه مدارات الحدیث اینا هم بدن ثابته بخاطر همین ك... است که ابتدا میکنه علامه ابدقیقه لعیدو همین امام زاهدی بر گفته و همین مصلا و جمهور محدثین بعدین گفتن خطا به اعتراض بکنه که شما نمیوید برای ما حدیث حسن را تعریف بکنید هرچند هرچند که ما إن... چینین لمسی داریم که امام خطابی میخواد به ما بگیر که حدیث حسن حدیثیه که مورد قبول هست در نظر فقه ها لیکن اعتوار صحیح را نداره درجهش ش از صحیح بایین پره لیکن ضعیف هم نیست چون اگر ضعیف بود که فقه ها حق نداشتن علمه ها حق نداشتن ازش استفاده بکنم من این چیلی نمز می که امام خطابی می خواد حدیث حسن لذاتیهی رو برای ما تعریف کنه حالا جمبندی امام ابن سلاح میاد که حدیث حسن را دو قسمت تقسیم می کنه حسن لذاتیهی و حسن لذیریهی حدیث حسن لذاتیهی چه نوع حدیثیه؟ ما این زبیت мигем хели зубед раҳатӣ ҳоло шарҳ-и шафаҳӣ дод нисфи шарҳ-и гузашта се чарӯм мешар гузашта чинине ки ал-муртзо фи ҳаддиҳи муттасил бити ки ҳаст дар тариқи ҳадис ҳасан аз ҳадис ҳасан лезати на леги ҳадис ҳасан лезати ал-муртзо المرتضى في حده ما اتصر بالنقل عدل قل ضبطه ولا لقمير البيت بعد ولا شذل ولا علل وليرتب مراتب والاحتجاج يشتبه الله وليرتب مراتب والاحتجاج ويشتبه الله والاحتجاج يشترون. المرتبطة كامل حسن. هذا حديثي كمورد رضاية المخدثين. هذا صحيح وانتره. لا تطلق الأبراحة أسبالش اتصال باشه. بالنقل عدل قل ضبطه. عادل باشه رب. لأن عدالتنا باشه ربي زيب. عدالت ليشه كامران باشه. عدالت باشه كامران باشه. ربي عادل كامران نبريم. عادل باشه در لفظش، الفاظش صادق و راستگو باشه. یکمی کمرا نشه، یکمی این رابی دروغ بگه یا یه چیزی که بدعت رو انجام بده، با اهل بدعت مثلا موافقت بکنه، این را... این رابی دیگه درجه عدالتش اهمیت نیست. با خوارج باشه، با مرجئه باشه، با هر کسی که باشه. میمونند الان فرقی که در این بیت بین حدیث حسن و خث صحي چیه میگه ق ل پرش به حدیث صحيب اینه ضفش همه در اونجا توز ضش در حث صحید تاریف حث صحيید راویش باید توز ضکش لیکن در حدیث حسن حن لذاات اینه خث حسن ل غری حث حسن لذاات راویش از لغا ضبطش تش هم رنگ ق لظ ولا شده ولا عويل ليله ولا راتي ملاطيبه ولا حجاج اشتري نهم شانسه و نهم معلوده بعد همون پنج شرط دارد لیکن در شرط پنجومش زبطش كمه بنسبة راوية حديث الصحيح قطان موز زبط حكو السلام شكرا اذا مي قلت شنو يعني كام هذه عباره ليست على صناعه الحدود والتعريفات اذا الصحيح ينطبق ذلك عليه ايضا لا في هو ما لم يبلغ درجه الصحيح هذه بكم ميجي ان عباره در صناعه تعريفات عبارت خطابی این عبارت خطابی اون پایه و اساس تعریف رو نداره چون پایه و اساس تعریف باید جامع و مانع باشه خلاصه جامع و مانع خلاصه باشه جامع باشه کم باشه گفتش جامع هم باشه همه ای مباحث در بر بگیره مانع هم باشه اعتراض روش نیاد اعتراض روش هست جامعاً نیز خلاصه‌ هم میشه اینا دراسته کی در تعریف امم خطابی میشه میگه ال صحیح و انطبق ذلك علیه ايضا حدیث الصحيح هم چون تعریفی روش مساق داره ما هم گفتیم نه اینکه فقط ذهب بلکه دائما چون تعریفی روش مساق عن درجه الضعیف ولم يبلغ درجه الصحه حدیث حسن ده میگه که ان زلمان حدیثی که از ضعیف و به درجه صحیحه نزدیکه اینم بازم تعریفش خلاص چی می‌خاستی قلت الحسن ما من من ضعف رواه فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح میگه اگر بخوایم این حسن حدیثی از زعف راویان سالم مده. راویانش ضعیف نیستن. خب راویانش ضعیف نیستن. بازم میگه خودش خودشم اقرار میکنه کنه میگه. اینم بازم فرقی با صحیح نداره. بخواد اینو برسونه که حدیث حسن ایک حدیثی که ما به صحیح و ضعیفیه. خب الان تعریف که نشد. تالا تعریف شد. هر ما تعریف نداشت. وحین حینایدن یکونو صحیح و مراتب که ما ق این دیگه دیگر حدیث حسن مبین صحیحه و زعیف بس حدیث صحیح مراتب رتبه داره میگه و پایین ترین رتبه صحیحه و حسن جزءهم صحیحه دیگه پایین ترین رتبه شه فجأ الحسن مثلا فی آخر مراتب الصحيح حسن بعنوان آخرین رتبه حدیث صحیح اومده که نما bọn قبولش نداریم یعنی بحث این ك... حسن را جز صحیح قرار بدی تداقل پیدا می چون ما در بحث حدیث صحیح برای خود شرط و شروط داریم راوی آدنش آدل کاموز زفت باشن ای با نداشته باشه شاز نباشه ارتسال داشته باشه لیکن در حدیث حسن ما شرط و شروط نداریم راویش روایتی داریم مرسل با شرط و شروط قید و قیودی میاد به درده حسن می یا راوی زفتش که به صحیح الحج سوء فهم داره یا وهم داره توهم داره دیگه حدیثش شافی مراد قبوله میشه یا بدله شواهد و یا صادق بعد از روایات بعد از روایتش قبل قبوله لیکن این قبولی این قبولی به اندازه قبولی حدیث صحیح نیست به اندازه قوت حدیث صحیح نیست حالا گفته ترمیزی هم بازم پاهاد اومد حالا این قسمت تا اینجا که داشتیم بیشتر حلوش حدیث حسن لذاتهی می شردید حدیث حسن لذاتهی که به نوعی مثل حدیث چیست صحیح حالا قبلتی که بری به بعدی حدیث صحیح لغیری چه حدیثی الان ما صحيح للذاتير فهمي فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدن ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شهوره بعلة قاجحة فتوذي إن حديثة صحيح للذاتير وبصحيح لغيري حديثة حسن للذاتير كانت شانت لكم هذا هو شيء صحيح لغيري من المتعرفة من الترمذي نوع ذوما حديث نوع ذوما حديث حسان شنين يجب يجب وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وذكر أنه يريد به أن يسلم راضيه من أن يكون متهما و ان يسلم من الشذوذ أن يروى نحوه من غير وجهه خب این تعریف امام ترمذی که جزء اولین علم الهامی هست که برای حدیث حسن تعریف گذاشته در مقدمه کتاب علل شیعه امام ان خیلی میاد نقد میکنه اعتراض میکنه میگه یه به صلا این گفتی که شما دارید نقد میکنید از ترمذی کجا گفته در چه کتابی و چه اصاسی داره امام ابن کسیر باید انتخاب می کنه امام حراقی میاد رد بر ابن کسیر میگه ده می که ای ابن کسیر شما تعریف امام ترمیزی را قبولی ندارید امام ترمیزی می گیره این چنین حرفی نزده و در چه کتاب این حرف رو زد اگه هرش امام حراقی میگه می آیا در کتاب صحیح سیستانان ترمیزی رو باز نکردید صحیح باز ب آیا ندیگی در قسمت آخرش در قسمت عللش اینچینین تعلیفی را بر حدیث حسن امام ترمزی داشته میگه در نصده های امایی که به دست ما را در کتاب عللش اینچینی تعلیفی ما داری که امام ترمزی همین گفته ای که به سلاح داره نقل میکنه ازش همین گفته در اون کتاب هم هست <تصفيق> الان الان این کتاب خلاصه ای خلاصه اصله در از کفته یعنی سلاح که نقمی بعد اومده ابن درقی خلاصش کرده تا اینکه زهبی اینجا داره نقش میکنه خلاصه یعنی گفتارها الان تحلیلش میکنیم و تحلیل کاملش میگه حدیث حسن چنون تحریفیه میگه چنون حدیثیه میگه که اولین شرطش راویانش از اتهام به دور باشند این یه لمه راوی منن یکونه متهم از افتحام به دور باشه راویش متهم نباشه متهم به درو متهم به بعض احادی یعنی زعیف جدا نباشه افصال اینجاست این خیلی پالا به ان باید بفهمه بفهم خیلی مسئله مهمیه خیلی از مشکلات برای طالب علم رو حل می کن این, این قواعد رو فهمیدن راویش زعیف جدا نباشه اگر روایتی ما زعیفی داشته باشی ده تا روایت داشته باشید متهم به دروغ و دروغو فلان اسباب اتحام رو درش داشته باشید در راویان آیا این حدیث درخیه حسن می رسد؟ هیچ وقت مثل بالمان مثلا حدیث تلقیم حدیث تلقیم حدیث تلقیمی که در قبرستان انگوش با فرو برن روی روی قبل روی قبل میذارن اون شخصی که میخواد دایی تلقیم بکنه میگه الان سآل میشی فروردگارت کیه؟ بگو فروردگار من خداست پیانبرت کیه؟ امام زهبی این حدیث را در تقاب از کار میاد میگه این راویش مغیره فکر کنم باشه میگه این رویش متهمه متهم و متهم دروس لیکه عمل اهلشان دلیل به تقویت این حدیث طالب علم در این گفته چی که دلات میکنه به مجرد دیگه این گفت رو بکنه افنا اقرار میکنه که رویش متهمه آیا متهم حدیثی که دلیه حسن میرسه نمیرس دوگو من گفت که به عمل اهل شام این حدیث را تحوییت می آیا عمل آیا عمل صحابه لا. چه برسته به اهل شام حدیث را تحوییت می کنه خیلی عمل صحابه موقفان نبیاد مرکوه را تحوییت بکنه نبیاد مرکوه را تحوییت بکنه حالا این مثال آوردم تا اینکه اهمیت الان حتی که دوباره شد بعد از افترهای دیگه هم بیاد. این مثال آوردم که این شرط و شروطی که علمه بزرشته با ما درک بکنیم الان امام ترمیدی میخواد تعریف حدیث حسن لغیری رو وزن من بگه تعریف حدیث حسن لغیری یکی از شرط و شروط ازادش میگه که اولاً باید راهیش متهم به دروب نباشه و دو بومن شاز نباشه و چند وجه دیگر هم روایت باشه چهار باشه مخالفت نکنه با روایت دیگر صحیح و از چند وجه هم روایت شده باشه یعنی چیز چند وجه چه منفومی داریخ میکنیم تقویتش این این زعیف ضعف یه سیر داریخ جدا نیست مرود الردي حسن اللي يريد يقرر سليمان حسن لذاته هي نيته في فاب امام الذهبي تشي ميجي ميجي على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه هلا هنا مياد نقطه الاختلاف هلا هنا مياد شلون توفيق بينه قفته بين المحدثين دار که تو تلویزیون رو باز می‌کنی، چون تلویزیون رو باز می‌کنی. می‌بینی؟ حدیث لو لا اشق على امه لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. لو لا اشق على امه. خب این حدیث امام ترمذی به فرض میاد بعد میگه این حدیث حسنه غریب هم هست یک طالب اینجا اشکال پیش, پیشش. این پیش میاد در ذهنش چطوره که این حدیث میگه حدیث حسنه فکر کنم الان صحیح هم اورده باشه حدیث حسنه و صحیح اون غریب چطوره که این حدیث حدیث حسنی هست صحیح هم هست غریب هم هست اینجا ایمام سرمزی داره میگه حدیث حسن حدیثی هی که راویانش متهم به دروغ نباشه، نشازم، نباشه، از چند وجه روایش شده باشه. از چند وجه. چطوره که، حالا این اعتراضی که ما بزهبی میکنم. میگه چطوره که در بعضی از جه میگه این حدیث حسن و غریب. حسن و غریب. و از یک وجه هم بیشتر روایش، لا نعرف بود، از یک وجه بیشتر هم روایش نشد. حق، طالب چطور برداشت بکنه، چطور برداشت ب تعریف حدیث ما همین مشکل مشکل اینجاست که امام ترمذی نمی‌مده برای اینو مشخص بکنه تعریف حدیث حسن لذاته ما مشکل اینجاست توهمی ایجاد شده که ما ما اومدیم تعریفی که در کتاب اعلان داشته روی حدیث حسن اووردیم در اینجا تطبیقش داریم در گفتی حسن غریب امام امتا حجر چی میگه؟ میگه لفظ کلمه حسن وقتی که امام ترمیزی میگه فلان حدیث حسنه یعنی مثلتا این حدیث حسن لغیریه در نظرش حسن لغیریه دیگه ذهنت در حدث حسن لذاتی اگر فقط لفظ حسن را بیاره اما اگر بگه این حدیث حسن غریب این اصطلاح دیگری هست که ما سعریبشو نداریم یک اصطلاح دیگری هست که میتونه احتمال امدرق شعب گفت احتمال چی داشته باشه؟ که این حدیث حسن لذاتیهی هست که غریبم از چشفال داره بعضی دیگر گفتن چه مانعی هست چه مانعی هست این حدیث حسن غریهی باشه ولی غرابتش غرابت معناش باشه و این غرابت معناش بخاطر این تاریخش باشه که از این تاریخ قد اومده چه معنیه هست؟ این؟, این اختلافات که پیش میاد اختلافاتم به خاطر اینه که خود امام ترمزی نیومده برای ما حد و حدودی برای تعلیف حدیث حسن غریب را بیاره و, و یک مشکلی که ما داریم و اونم اینه که آیا غریب در نزد امام ترمیزی مقصدش غریب لغوی هست یا غریب اصطلاحی ما این مشکلی که داریم لیکن در اینجا تایید میکنه که این غریب غریب هست گفتش که چی؟ از یک وجه بیشتر رباید نشده از یک وجه از این وجه به بیشتر رباید نشده میگه این حدیث مثلا از این وجه بیشتر رباید نشده اینجا بده شاید تعیید بکنه گفته اینکه این غریب غریب اصطلاحیتون از یک بچه لیکن از این وجه باشه از این وجه غریب باشه آیا نمیتونه وجوه دیگری اون رو تمیسه حدیث دوله نشه حدیث در, در نظر امام ترمیزی زرخه درشه لیکن اصل حدیث کجاست؟ در بخاری همونسی با این سندی که امام ترمیزی داره چیه؟ غریباً، پیدا دیکلمات غریبه، لیکن اَثَر صحیحه. چی میش این حدیث؟ حسان درین. بس میش حدیث حسان غریبه غریبه. غریب قد از اون اسناده قرار این هم که اونهایی اومدن این گفته را بفهمن گفته ایمام ترمزی حسن غریب مشکلشون اینه که قوالب اون قوالبی که برای تعریف حدیث حسن گذاشتن و غریب گذاشتن اومدن در این تعریف گذاشتن این اصطلاح رو خوب نفهم میدن میهن که این اصطلاح خاصه ایمام ترمزی که میهن که این حقیق حسنه لیکن به اعتبار این اتناد غریبه ки митӯнад ин хасан ҳам хасан беғайрии бошад, хадиси хасан сизод. хуб. бахти таъриф мунтазами тамошо шуд. фаҳмид? ошаед. чизе дигар дарстар навард. хуб. дарголе бахтимон мегичад вакил ал لا يمكن أن احتمال الرجال. احتمال الرجال عن ذكي كزائف رجال. زائف. يعني بين حديث الصحيحة و بين حديث زائف. بودن بوضع. قابل فارقنا مثل. ويسيق العمل وقت. ليس بالعمل. وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط. يتميز به الضعيف المهتمة. بضعف المحتمل، يجيء انمازن يكذابه مشخطي ليس ما بيتوني. يك ضعف محتمل ورتسب. خلاص خلاص الجنبدي وقال العلامه ابن صلاح رحمه الله إن الحسن قدما احدهما ما لا يخلو سنده من مستور ما لا يخلو سنده من مستور. لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خفاء ولا متهم ويكون المتن مع ذلك عرف مثله مثله او نحوه من وجه آخر اعصد به شنو حديث حسنة قيد المهم لسل الله با جنبندی کل این تعریفاتی که شد حدیث حسن دو نور است. نور اول لغیرهی. میگه سندش خالی از راوی کم احلیت نباشه. یعنی یک جایی که راوی کم احلیت توش باشه. چون اگر احلیت داشته باشه همه راویانش چی میشه؟ میشه صحیحی. یا میشه حدیث حسن لذاری. میگه هلییتش کامل نباشه یک از را بیام یا دو تخت فرقی نداره. باید در یک جادستان استاد اهلییتش رو کامل نباشه. لاک اهلییتش کامل نباشه دلیل بر این نیست که ضعیف جدان است دلیل بر این نیست که دروغ هم ازش قبلون که دروغ رو نبااد باشه مقفر و کیک زیاد باشه و متهم به دروغ نباشه یعنی حدی ضعف جدا نباشه و چت اولش حديث ضعيف جدا نباشه و يكون المدن مع ذلك عرف مثله او نحوه من وجه اخر اعتبر به حديث, حديث حسن حتى لو غير حديث يك ضعف كثير و از وجه ديگري مثل خودش يا به معناي خودش روايت شده باشه يعني يك روايتي ديگري بياد اونو تقويت بکنه حالا حديث حسن بياد مثل حديث مورثي که داريم در صفحه سوره صاد اللهم تقبلها مني كما تقبلت من داود سجدته اللهم اكتب لي بها أجرا وحتط فيه عني بها وزرا إن ذكريك دار بحث سجدية شكرة سريح صارفة داري إن جايك رسول سجدية مفران على بعد القاتم يقول إن دعاية خاص سجدية صارفة شكرة در اصل سجده ها شکره بعد در قاتی می کنند این ذکر را در همه اوراد در همه سجده ها می کنند نه این ذکر خاص سجده ساده که راوی حدیثی که من در خواب دیدم که درخت سجده ساده رزم درخت ها و قلم سجده کردن به سجده پرو آمدن و این دعا را کردند و رسول ها رسول ها می کنند میگه به منم یاد بده خاص سجده سجده را نکنید بعد در نثراتین الله مت قبل هم مننی کهمت قبل همدا بوده س چه سجر ورت قبول کرد همین سر شپلیکت در اینجا دا اینحلث ن در صر مرس مورسل مورسل ضعید یا نه مورسل ضید استنادش از قوت بالا راویانش عادل و دابط دی که مرسله تابع داره میاد دیگه را صبا چین یکی وقت ما بررسی کردیم دیدیم این حدیث از طرق مرسل دیگری رواید شدن از وجه دیگری مثل خودش رواید شدن گفتیم که چه بسی این حدیث اصلی داره واسه خودش یک تابعی نمیاد در سر خودش چیزی بگیر حدما شنیده خصوصا این تابعی دیگه اومده تعییدش بکنه از وجه دیگری رواید شده اونو تقریب کرده رسونده شده در جای چی حالا این مسئلهی که دارم میگم از کسی خودمون یعنی در کتاب نیست لغا شما میتونید خود اضافه بکنید یعنی کتاب هایی مثلا ارواق غیل رو بکنید یا نصف رایی رو بکنید علماء اون مسئلهی که زدن ازشون استفاده بکنید خب و ثانی هما دومین و بشت چنو حدیث؟ حسان نزده بذري خب نعذهم حديث حسين لذاته مدوى الثاني هما أن يكون راوي مجهورا بالصدق والأمانة يعني عاد الوحش لكنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان قال الضبط ضبطش کامل نباه هو مع ذلك اگر ستث عن حالي من يعد تفرود هو تفرده هومونكررا معدم ت وال نباه معلو هم نباه و می حال عاددل که باشه زبطش کم باشه این ضبطش بایدطورری باشه که ك... اشتباهاتش زیاد نباشه فاحش الغلط نباشه کثیر الخضا نباشه میشه زیادی خیزن اگه او کنید خیلی خیلی زیادی ها رابی میتونه عادل باشه رابی میتونه عادل باشه صدوق هم باشه لیکن این لفظو داره امام نحجر مثلا چین جرمشون صدوق یهم و کثیرن این نمیتونه هیچ بقی حدیث حسن لذاتی باشه یخطه و کثیره اشتباه زیاد می کنه توهم زیاد داره اینها هیچ وقت حدیثشون هر که عادل باشه هرچند ایمان باشه ابو حریف هم باشه عادله لیکن در ضبطش کار داره هیچ وقت دارید حدیثش باید حدیث حسن لذاتی ننیره چه و نخواهد در بسید این که این راوی باید ثاری باشه که تفردش ممکن نباشه حالا این تفردش ممکن نباشه در بحث ممکن هم واحد هست که منکر چه نوع حدیثیه لیکن الان برمان عنوان اشاره بهتون میگم منکر یا اینکه ضعیف بیاد مخالفت بکنه با صحیحه یک راوی ضعیف بیاد مخالفت بکنه با راوی صحیح این حالت اول حالت دومی که اینجا مقصوده راوی ضعیف جدا یک راوی مثلا یک روایتش متفرد بشه یکی روایت خودش منحسراً روایت بکنه هیچ کتی دیگر روایت نکنه هیچ کتی دیگر روایت نکنه این میشه منکن خب آراه دنباله بحث انتقاداتی هست از حلام زهبی و همشنی به دقیق العیق میگه واحد فهاذا عليه مؤاخذات این خلاصه و جنبندی که ابن اصلاح میکنه روش انتقاداتی هست برای انتقاداتی هست ما بعد از انتقادات رو گفتیم اصلاحش کرد در ضمن خود تعریفش میگه وقت قلت الک ان الحسن ما قصرت قليلا عن رتبه عن النطق الصحيح وإن سيظهر لك بأمثلة ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إيات من ذلك فكم من حديث تردد فيه الففاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة و یوم ان يصفه ولا بالبص و لربما استبطعته دیکه عم تو قبلا بهت گفتم حدیث حسن حدیث کاتب صحیح و این در مجلس میگه و تمام نداشته باشه که قاعده کلی بهش دست یابی پیدا بکنی که بتونی در درجه در بارسته رو بایش تشخیص بدی که این حدیث صحیح لذاتیه حتن لذاتیه میگه که از ظابطه مشخصی واسه نیست آنما هم این گفته رو قبول نبریم گفته که که نمیشه واسه ظابطه گذاشت نه میشه ظابطه گذاشت به علما هم ظابطه گذاشت یعنی بعد از اعلام نووی که اومده هم همچنین امام خوابک که اومدن این تعریفات روبراش حد حدودی گذاشتن دیگه بعد دیگه برای اون مشخص شده هر که قبل امام در امام اماام تررودی ما اینجینی جین تخیاتی می بینیم. بعد ها دیگه بن حد حد نگذاشتن هرچ که استثنا توش هست حد و حدودی داره. لیکن استثنا برای یک اما وقااست اما ترروی در کتاب سندش. لیکن دلیل بر الیش گفتن حددید حسن نمیشه. قید امید بکنیم از امید دست بکشیم بگیم که نه حسن دیگه ایچ امیدی نیست نمیشه بسهش تعریفی گذاشتن نه میگه چقدر از رفت حسن که عالم ها درشون موندن بینه حسن بودنشون صحیح بودن و زعیف بودن یک بار میگن صحیحه بار دیگر میگن حسنه و جایی هم شاید ضعیفش بدونن بله ما هم در راجعات علامه آلوانی میبینیم یک حدیث را تضعیف میکنه جای دیگر, دیگر تحصیلش میکنه و جایی بعضی از حادیث تصحیلش میکنه و بعد از مدتی میاد تضعیفش میکنه مثل حدیث حسن بسری که از عمران ابن حسن نقم میکنه از عمران نقم میکنه که رسول الله در نمازش دو تا فکره داشته و در روایدی تا فکره داشته قبل سلکه بین فاتحه و سوره بعدی و قبل از رکود علامه البانی بین فاتحه و روایتی که بین فاتحه هست و بین سوره بعدی رو تضعیف میکردن قبل از فاتحه را تضعیف میکردن چون بحث استفتاح درشت بحثی که از داری استفتاح چون در روایت دیگر اومده و تحسین میکردن و او قسمت اول تحتیش میکرد قسمت و تحتیش میکردن قسمت آخرش تحسینش میگن قسمت آخرش تحسینش میگن قسمت وسطش تافش می کرد به خاطر اضابش یک جا میگفت گفت یک جا می گفت یک جا میگفت گفت دو تا یک جا میگفت یک تا یک جا درصد قسمت اولش صحیح ل ای هست بخاطر اینکه در رووای گرفتده قسمت آخرش حسن لظات ای هست الان نظرش قبلنا چون می جی... کهجیی مخالفتی نداره با رواهی دیگه و اصطرابی هم درش لیکن بعد از ذراتی بعد از مدتی میگه که من چه اشتباهی رو جار شدم این حدیث مرسه حسن که با امرو ملاقات نکرد لیگه میگه اصل عام می داره یعنی هرچند که الا میشه بهش سناب کرد هرچند که این سکسال ها هرچند که زیاد نیست سفتاح نیست لیگه چا دیگه اصل عام میداشته باشه لیکن асбар ин ки хадиси мустарб хуттан равишам риwayatш ам мурсал ва шаҳоди андарад дуруст дар қисмати аввали шаҳоди доред мо ба خاطر ин риwayat сабили чазани мо ба خاطر риwayat таҳққа ва иштори хуб ин ба умуми намуна меавурдим яъни як олим ки ҷомиш عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انتك ذلك لصحب اتفاق معك الذي إنك حديث حسن لا مشخصي وغادرينك يعني يصابتش مشخصي وغادرينك حديث حسن حديث صحيحي كيف قال رابيان طبيعي هذا بزع في درجة النبوذ وليس لنا مشخصي فالشئ صحيحنا هذا فرقوا تعديل الصحيح ليسند نتيجة ولما امدان في قسمه جدا الصحيح وقال الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح عليه اشكال الاقي ما فسعوا شد هلا رد بر امام صلاح تمون شد وماذا نرى المساله بعدين قلت امام الترمذي حديث حسن وصحيح شو نیمکنم بزن برای جلسه برد بزن را خلالت بحث جمبری حدیث حسن رزایی دیگه قاتی میکنی سپنون کسی سؤال کم اینجا داره چیزی؟ مشکلی ها. بحث درست درست بعدی تنگین هست چون گفته امومه ترمزی حدیث حسنه و صحیحه و وجودهجدیاده آیا محدش ح لغبی ح صللاح است و این ح اگر صلاحی بلجه ح لریگی هست یا ح الزاده است بحث هم همین تو این صحيح از, از نظر لغت یا این صحت صحيح الزا یا صیح لگی هست اینما واحد درش سو چطور جنندی بگویم ما چطور فهمیدم که موکول می بینیم هم به در آینده شما сокут. то ке баъда аз вақт ва сифати дигар мебичад. сукут яъни як миқдори истадан сукут ихтиёр кардам ва на байни аят, байни дута сура, масалан аллоҳу акбар истадан сукут ихтиёр кардам, баъзе ксе таҳми кунад. ва میمینه الان سکتی به حدیبت از وقت دریده برش هست؟ آیا حدیث حسنی، حسن بسری که امام عبود داود نقومی کنه صحیحه در این با یا اینکه که مرسل و شواهد نداره مرسل شواهد نداره مسترب هست در نتیجه این روایت ضعیفه و این کارم میشه به این کارم میشه به درد که بین دو تا سوره میشه الان میمونه این به خاطر چی باشه؟ اگر سکوت، بخاطر اینکه انسان مثلا نفس بکشه، فکر بزن رسولی بعدی که چی می‌خواد بکنه، خاطی نکنه، یک تمدد حواس ایجاد بشه، خوش می‌رسن که پشت سرش ما الله که اگر شافعی ها باشن، با بلند بسم الله الرحمن الرحیم و بلند می‌خونن و میترسی که لب تو لب بیاد، اینش اشتباهه نداری دور از مفاهت دی، مقدمه جلب مصالح، می‌خوای یک مفسده رو از خودت دور بکنی. مقدمج یک مسه یک بدتی مفره از خود دورو ک درست لیکن حالا دوتا مافده هست یکی نمازت از بشه یکی در یک بدی. میتونی با تغییر نیت نه به خاطر سکوتی که احداث دردی شده نه به خاطر اینکه خود تم تمرکز, تمرکز دست نره یک سیتری داشته باشی اشکال نداره اما به خاطر اینکه فوق ها گفتن این سکوت را باید اختیار کرد تا معموم بکنه این سکوت رسول الله نداشته و هیچ روایتی نشده در این کار بده و همچنین قبل از روکن برای گرفتن نفس درسته اما اینکه سکوت ما اختیار بکنیم یک دقیقه بیرسی تا به روکن بریم نخیق نداره در روایتی کنیم هرچنکه در کتاب اصل صفت صلاح آلبانی در سجلیش لمس میشه که آلبانی میل داره که این حدیث به حس بی که فکر نکنم که اون چیزهایی که اوورده بود در تقویت حدیث حسن بزری فکر نکنم که مستند قوی باشه که بقید اون رو تقویت بکنه. الان این بحث شوی خودش در در باب فقه و در باب صفت سنان. و علمان شما تزدیکم نخواهی سن مثلا ممنون مفتح می شود را درده فاعد چرا مثلا این اختلافات هست بین علمان حالا همینجا هم داشتیم یک عالم یک جا میاد دیگین حدیث حسن یک جا دیگه میگه ضعیف یک جا میگه صحیح حالا این اختلافات حالا هرچند که در بسی معلی خودش نخواهد شاید موافق از باب استدراف بگیم این اختلافات که هست اختلافات در میگرده بفهم علل یک عالم خودشنا امام ترمذی کی ایجاون ترمذی و این عالم دیگه هیچ یعنی مسئله چرا فرق شده باشی مثلا به خاطر اینکه علم, علم من نسبت به اون رابیان فرق میکنه با علم شخص دیگه امام ترمذی در حد علمش نظرش رو گفتن حدیث حدن لیکن بعد که مدام بررزی کردم که این حدیث محلل است خب من گفتم یہ ضعیف است دیگه مو مشکلی نداره یک عالم خودش چرا این دفعه داشته باشه؟ چرا مثلا امام ترمزی یک حدیثی را در کتابش اینجا میاره در این باب میاره میگه حدیث حسن صحیحه یک جا دیگه میگه حدیث حسن صحیح و غریبه یا میگه غریبه تنها چرا؟ حالا این درمیگرده به اصل خود اون روایه ما باید شناق داشته باشیم به اون عالم و به اون تعریفاتش اونجایی که امام ترمزی میگه حدیث حسن و صحیحه خب شک که درش نیست که راویانش برای توی صحیح رکیده لیکه مشکل در کجاست مشکل در آنجا که غریبه چون لیکه از راویان فرق میکنه معرویات قبل اینجا گفته دریبه حالا یک عالم یک عالمی که میاد گفتهاش در گفتهاش بر میگرده اون عالم در یک زمان یک راوی را اصلا هم به فرص ممتن بدی جاهایی میشه مثلا در کتابه سنانش یک حدیث رو بیاره بگی حدیث حسن صحیح و در کتاب عللش مثلا بگیم یک حدیث معلوله. چرا اینچین این کاری رو میکنه؟ میگرد نفهمیده از خب خودش خوب. کتابش رو مثلا نوشته و میتونسته بر بگرده چرا بر نگشته؟ ما این رو تو ذهنمون باشه. که خیلی از علمات استدراکاتی که داشتن در اواقع و عمرشون بوده. سن کتاب علل که داشتیم ترمیزی نوشه بعد ا بعد از اینکه حدیث رو بررسی کرده و اون عدوات نوشتم خیلی کم بوده یک اموم بیادی نمیده این همه زحمت بکشه دیگه درزهای که نبودن دیگه بعد کپی بشه و پیس بشه و نمیدونم کات بشه و دلت بشه نمیدونم درشیم دیگه نوشته اون همه نمیدونم برگه بود اون همه پوست حیوان و ها و فلان دیگه پاک کردنش مشکل تجدیرش مشکل نم و نمیشه دوباره از, از اول تا آخرش دوباره بازیدیش کرد. خاطر همین میبینیم که یک عالم در کتابش میاد حدیث را تحصیحش میکنه. میاد در آخرامرش در کسید یک از حصابهای علتش به علتش پیل میبره و زعیبش میده. علمالبایه همیتون. میبینیم که مثلا در کتاب صفت و صلاح یا سفلی صحیحه یا ارباغلی بحثیت از حدیث را تحصیح میکنه. لیکن در کتاب ترقیب و ترهیب که آخرین کتاب باشه تراجعه می کنه مثل حدیث ده بار سلواز گفتن در عبدالر سلواز مثال ابشی خالبانی مدتی در تحتین این حدیث بودن لیکن بعد از مدتی تضعیفش میکنن به خاطر بعد از راویان در ترقیب و ترهیب میان تضعیفش می حالا بعضی جاها به خاطر ایب و ایلتی هست که آلم میاد اون حدیث رو تدید می کنه. هم هست نه. مثلا چی خواهد بینید نهید جامعه حدیث روزی گرفتن روز شنبه روزی گرفتن روز شمبه. راستان روز شنبه رو می گرفتن و یک شنبه و دو شمبه. از هر ماه. یک ماه یک شنبه شنبه یک شنبه دو شمبه. یک ماه سه شمبه چار شمبه روزی نگرفتن. خب این حدیث حسن نزادهی هست و آلبانی تحقیش می تو تا اینکه بعد از مدتی شیخالدانی به اون حدیث تصفیه پیدا می که که رسولان نه می کنند از روزی گرفتن روز شمبه. فتواش عوض میشه اون حدیث رو می گه شاده. و سلوی. اصل به اینی که روزی گرفتن شمبه حرامه. درستی فتح که اون روز تاسیه ها باشه و باشه عرفه باشه. ما برای گفته نگفته هستیم. چرا؟ مثل مثل اصولی بشتر. چرخشو دیگه. خارج از در. لاج... چون به وجهی رب داره لابده اصول فکر. وجهی هم به مصطلح حدیث. مثل اختلافی شدیده. ما در حدیث جوانیه داریم که روز جمعه روزه بودن. سآل کردن روز روزه هستی؟ گفتن آره. گفتن دیروز روزه بودی؟ گفتن نه. میخوای فردا روزه گیری؟ گفتن نه. گفتن که چی؟ حق نداری روزه بری با روزه تا افتار بکنی. پس از این حدید چی مفهوم میشه؟ که روز روزه گرفتن جمعه به طور دنهایی درست میسه. لیکن. مفهومش چی اگر فردا روزه میگیری جمعه باشن به، اشکالی نداره این درسته. در اونجا نهی از روزو گرفتن شمبه منطوق یا مفهوم؟ منطوق میگه پس منطوق در اصول فقر مقدم برد مفهوم تو فهمی گرد اون فریس برداشت خودت اینجا نهی کرده نهیش مقدم بر. مفهوم ما میگیم؟ میگیم این در صورتی هست که نشه جنبندی کرد بین مفهوم منطوق جمع در اصول فقد داریم اولوانه ترجیح شما ترجیح داریم آیا نمیشه جمع بندی کرد؟ خب میشه جمع بندی کرد چطور؟ جمع بندی همون که در جمعه گفتیم متفرد نمیشه در شنبه هم چه معنی داره که شنبه متفرد نشد؟ خودتن که شنبه و یک شنبه و دو شنبه رسول الله با هم روزه گرفتن پس میشه جمع بندی کرد و آنم این که شنبه مثل جمعه متفردن به تمهی که روزه نگیره خصوصا این که فعل خوزم ما این که فعل رسول الله داریم و فعل رو نمیتونیم بگیم چیچی منسوخه یا شازه ما چه موقع میتونیم بگیم یکی رواید شازه که سقه بیاد مخالفت بکنه با سقه تر از خودت یا مجموعی ازدقات در ذات همون باید لیکن با اون بمایت نهی رسول الله نمیشه گفت این شاذه چرا ما این شذوز در ذات یک روایت داریم اگر یک راوی بیاد دستراو بکنه بیا مثلا دو تا راوی بیان بگن مثلا یک شنبه و شنبه روز یک شنبه دو شنبه روز گرفته یک راوی دیگه بیا دیگه نه شنبه و یک شنبه بوده اون یکی برخلاف اون دو تا داره روایت می‌کنه پس ما بگیم شنبه یک شنبه اشتباهه دو شنبه سه شنبه درسته خب الان اینجا این رویتی که شما میگید شاذه با چی مخالفت کرده با فعل یا با قول مخالفت با کرده خب اگر قول باشه شما چطور میگید که شاذه ما یک مسئله داریم در, در در اصول فقه اگر یک کاری را رسول الله ازش نهی بکنن سپس اون کار را انجام بدن دلیل بر اینه که اون فعل از حرام انتقال پیدا میتونه بکراحت یا اباحت مثال رسول الله نهش شده از استقبال و استدبار و قبله در قضای حاجت عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله میگن که من رفتم بالای خونه رسول الله دیدم که چی؟ پشت به قبله قضای حاجت میکنه چرا این کار انجام داد اونجا نه هش بحشت احریمه در کجا در خلقل در خل در در د د در د د ر ر ر ر ر ر ر بگن در جایی که دیواره میگه بالای خونه را فهم دیدم تا رسول الله پوشت به قبل قضایه حالیه حالا ما بخاطر همین میگن اگر در جایی بسته باشه در یک حمام در شید آقا باشه پوشت به قبله و رو به قبله اشکال نداره چون رسول الله یعنی اون اهی رسول الله که بعد تحریم بوده به فعرش انتقال پیدا کرده به کراحت رای با حج. خب اینجا هم همین اون همیدون حمله بر تحرین نمیشه کرده. چمه اونگه حمله بر تحرین میشه؟ حالا ما از بابت جواز بگیم وقتی که تفرد بشه. نیکن اگر جمع بشه. همون ترسول دار روزه گفت و یک شنبه و دوشنبه شمبه اشتالی نداره. خب. بحث اصولی ها الان در بحث جنبندی بین احادی همه تو گروه هستند دیدید هر کدوم برای خودشون یک نظریه داره حالا احسان بحث احیث بکنه بیاد احادیث رو واسه تناره هم بذاره قواعد رو هم بذاره تا اینکه تشریف بذاره آخر تا اینکه بچنه امقدر نمی ترجیح علمایمون شیخ عبد المحسن عطواد شیخ ابن عثیمین بر اینی که اشکال نداره که شنبه با یک شنبه یا جمعه با شنبه, با شنبه گرفته باشه و اون مفهومی که آلبانی اعتبار بهش نمیده اون مفهود اعتبار دارد و اعتبارش هم در اینه که تفروزن جائز نیست ولی جمعا بین دوتا روز با هم اشکالی نداره خب سبحانه کلام همدک سبحانه